آن شنیدستی که پیغمبر بگفتا این سخن نهدن از یاران من اهل بهشتن مرد من تلحت الخیر است و آن دیگر زبشن شیر دین آن سید و آن دگر عثمان جمله اهل دین عبدالرحمن زد و بوبکر از منظور نبی ان دگر فارو بود از بو ابی دو علی. ان دگر فارو بود از بو ابی علی. گر تو هستی اهل دین ایران رو به راه نبی. واجب جبست خریم آن اصحاب بالای نبی. واجب جبست خریم آن اصحاب و نبی. چون کلام حق و نزل بر قلب رسول مستمه اصحاب بودن تو بخوان حکم رسول آنکه که بین امت احمد شکاف ایجاد کرد رید در کفشش بود و قافر از این دنیا برک دین هر گرماندگار است ای برادر این زمان حاصله جهد و تلاشه آن صحاب است و ددا گر تو خوایی خیر این دنیا و اقبار را بری لاجرم فرمان اسحاب و پینبر را بری دین هر گرماندگار دی بر ی این زمان حاصل جهد و تلاش آن صحاب هست و گر تو خواهی خیر این دنیا و اقبار را بری لا جرم فرمان اصحاب و پیمبر را بری گر تو هستی فیروه زهرا و اولاد علی چون علی باید تو باشی در پیه حکم نبی این پسر دوری کن از بد در دین خدا چون که به درداید از در میرو لطف خدا این پسر دوری کن از بد در دین خدا چون که به آید از در میرو لطف خدا چون که به درداید از در میرو لطف خدا چون که بترد آیا دست در می ره خدا؟ چون که بترد آیا دست در می ره بر خدا؟ چون که بترد آیا دست در می ره بر خدا؟